بازنگری در تاریخ قلم رو بمیانی. به نام خدا با عرض سلام و عدب احترام خدمت همیهنان هم گرامی قسمت سی و دوم برنامه ایران ویج رو ما در خدمت شما هستیم امیدواریم که تا این قسمت از برنامه ها از بحث ها استفاده کردین و همچنین اختلافی که بین کاشناسان برنامه هست شما رو نرنجیده باشه کاملا طبیعی هستش و ما تا هر چه قدم که اختلاف ادامه داشته باشه ما ادامه خواهیم داد بحث ها رو در این قسمت ابتدا می‌خوایم از جناب آقای فیروزی شروع بکنیم. البته خدمت شما عزیز بگم که خوشبختانه در این قسمت هر چهار کارشناس برنامهم حضور دارن و امیدواریم که دیگه از این به بعد هر چهار تاشون حضور داشته باشن و از بحثشون استفاده بکنیم. ما تمام بحث هامون تا خوب پیش میرفت و همونطور که شنوندگان خاطر مبارکشون هست تا قسمت 15 و ما هم مشکل خاصی نداشتیم. بحث به جایی که رسید در زمان جمشید و مکان ایرانویج و زمان پادشاهی جمشید مشکل اینجا عاد شد و ظاهرا هم به یک ظاهر البته من میگم این قطعا حل خواهد شد به یک گره ناگشودنی ما خوردیم به نظر میاد یک مناظره ای و یا یک بحث اساسی و جانان لازم هست در مورد فرگرد های یکم و دوم ببندی داد مهمترین در واقع مدعیاتی که یکی از کارشناسان و برنامه جناب آقای فیروزی دارن در همین مورد هست خیلی هم سرسختانه معتقدن که این پادشاهان جو مرز هوشنگ، سیامک جمشید اینها اینا شخص بودن، یه از اشخاص کاملا انسان بودن و کاملا زمینی انتخاب شده بودن به عنوان پادشاه توسط اون انجمن هایی که در متون کوهن هم هستش و به اضافه اینکه در مورد مکان اونها هم نظریات مشخصی دارن و تو کتاب هاشون هم هستش میخواییم از شروع کنیم در مورد تفاوت فرگرد یکم وندیداد و دوم وندی ایشون حدود 7 دقیقه فرصت دارن این تفاوت رو مطرح بکنن ما حدود 10 الى 15 دقیقه در نقد صحبت های ایشون به کاشناسان دیگه فرصت میدیم ادامه برنامه ما میخواییم روش تحقیقی که تا به حال داشتیم اون رو مورد بحث بذاریم مدت 20 دقیقه در موردش صحبت کنیم و راهکار برای رفع نقاط ضعف اون ارائه بدیم تا از قسمت 33 من به بعد بحثامون دیگه از این حالت بگو مگو و حالت اینکه هر کسی سرسختانه فقط روی نظر خودش بیسته و فقط نظر خودش رو بگه و اصل مطلق بدونه از این حالت خارج بشیم و کمی به بحثا سر و بدیم جناب آقای فیروزی تفاوت فرگرد یکم و دوم داد بر اساس مطالعاتی که در حوزه باستان شناسی و حوزه در واقع ژنتیک شما داشتید خیلی شفاف و روشن در هفت دقیقه شما بفرمایید. درود در شما شنوندگان در یک کلام فرگرد یکم عرض کردم مربوط به مهاجرت نیاکان ایرانیان پیش از تشکیل حکومت اولیه است که طبق متون کیومرث بوده، سازنده حکومت اولی یعنی پیشینیان کیومرث و ایرانیان و فرقه دوم دو کاملا مربوط به واقعه ایست محلی به دوران حاکمیت جمشید. دو چیز متفاوت هستن چیزی که مت میگه این هست یعنی مت دوم دو اسم پادشای چهارم از پیشتادیانه میره مت اول فقط داره از خواستگاهی صحبت میکنه که اینه علاقه من بشه هستن و سرزمین های بعدی ببینید ما الان سال 2015 هست انا فکر کنم سال از کشف قبر کیومرس مصریا منس گذشته عکسشم داره میچرخه عکسشم سیاه‌سفید شده ما هنوز جاستین ببینیم که این آقا آدم بود یا فلام ببینید یه فرقه ای وجود داره به اسم فرقه کیومرسیه اینو تو این اسناد اسلامی هم سرچ کردم حالا من امروز ساعت 3:30 نیم بهم زنگ زدن که برنامه تشکیل میشه چی با خودم نبردم ولی این قابل پیگیریه در این کتابای معروف ماورخان اسلامی حالا ابن بلخی خوندم یا هر کسی خونده میشه شب در این که باره این فرقه روشن نوشته شده که پیروان این فرقه در کنار فرقه های دیگر ایرانی مثل آزا و چیچی و زروانی و از این صحبت ها کسانی هستن اعتقاد دارن که این کیومرس نخستین انسان است و در برابر بشر هست در اون چیزی که مثلا در ادیان ابراهیمی این مطلب مطلبو گفته و حالا ما درک میکنیم که چه در متونی ایرانی نصف بخشی از متون میگن این نوخسین پادشاه هست بخشی میگن این نوخسین انسان است این یه چیزی خواستم البته رقابتی اجازه کنم با این عریان ابراهیمی خیلی ریشه داری هم نیستش این قضیه و در تمام جهان هم تحلیل متون و شخصیت‌ها و دورای پادشاهی و این چیزایی که در متون کماندوره ما سومای چین چینیو داریم دیگه این دست باستان شناس رفت این دست باستان شناس رفت تحلیل کرد به نتیجه رسید باستان شناسی باشه با زبان شناست تحلیل کنه و اگه نتیجه نگیره بعد میرفت میرفتو حوزه ای اسطوره اینجا هنوز پله اول باستانشناس اصلا کتابخونه بیرون بود مورخ که به دست باستانشنات میخواست زبان از اینا دیو و پری بسازه یا نمای دوره بسازه هم اصلا در جوی دنیا نیست یه متنراسی دوستان برم مطالعه بکنن بعد بیان صحبت کنن فرگرده یکم به چه دلیل من اعتقاد دارم و پیش از منم اعتقاد من اعتقاد دارم فهم بودن من اعتقاد مطرح نکن من نه اعتقاد دارم که این چرا جا به جای نیاکان ایرانی پیش از حکومت اولی است به چند دلیل یک همخوانی شگفت آوری مسیر این سرزنی سرزنیو ترتیب دارند حالا از نویسنده باستانی انتظار نراشته باشید که بیاد قصه ناصر رو بنویسه بگه از سرزمین اول کوچ کردم. به این تعداد جمعیت از اصل هم تو کتیبه پارسیش خیلی دادا که کتیبه بابلیش اش ننوشته تعداد کشته ها و زخمیار ننوشته ولی تو کتیبه بابلیش نوشته این نویسنده باستانی کشتو سختو چه ربطی بده این واسه؟ میخوام بگم که هیچ ربطی نداره که ما از نویسنده باستانی اطلاعات ریز دریق بخوای. اصلا ربطی نداره. یعنی ببینید سرزمین اول نوشته آفریده شد، دومین سرزمینه که آفریده شد فلان بود. بس اینا یه ترتیب بینشون هست. در ترتیب پیدایش و آفرینششون. این آفرینش شد اگه بخواید الهی ببینید یا یعنی یعنی یعنی یعنی عقده‌ایون بالا اینا میذاره. ای برا زمینی فکر کنیم یه باستانشناس فکر کنیم به نظر من از نظر زمین اینا ای آشناش با این سرزمین ها بلخی وجود نداشته هم می نویسن اینجا بعد تو دایناسور میگن دایناسور در فلان قاره برفتن این قاره ها که این بحث جغرافی ها قدیمی ها این حالا چرا من میگم چون با ژنتیک داره بله در مقاله خانم کارافت که من صحبت کردیم و آقای پیش از این برنامه من می گفتن که هیچ بحثی از جایگاه ها نیمده. این درسته خانم کرافه جدولی مقالش داده هاپلو گروپ ها رو ردیف کردن شاخص‌های جنتیکی رو آر اینقدر 24 سال هزار سال تا 38 هزار سال آروان که بچه یا بخوام خیلی راحت بگم بچه‌ی آر هستش متواصلی 12500 در مقالات دیگر هست که ما میریم می‌بینیم که اینا خاصگاهشون کجاست یعنی آر, آر رو برید سرچ کنید خاکگاه آسیای است آر به آر وانی بزنید خاورمیانه است یعنی قابل سرچ حتماً یه دونه مقاله دون دون دنیا ننوشتن و اونا لزومی نمیش پنیم چون تاریخ شدن وقتی اولیش رو زده در 34000 سال پیش 24 تا 34000 سال پیش بالاتر آسیای میانه است و دومیش قاورمیانه جنوب برای قاورمیانه میخواد پای افغانستان شروع شده داد لبنا من کاری نداره این توی این منطقه است جنوبیتره وقتی اینو من میبینم و چک میکنم با دورهای زمین شناسی میبینم حتی اون 34000 ساله اصلا به این یخ بندان آخرام نمیخوره به یخ بندان سومین داره میخوره از دست اون اتفاق افتاد اینا اومدن جنوب چون با اون همخوانی داره مثلا سر چهارمی نیست که ما گیر کردی و بعد اصلا از اون قضیه گذشته یه تعدادی اومدن پایین، یه تعداد قطعا جا موندن یا تر اومدن، یه سری هستن اصلا الباقیان سر آخری اومدن پایین. که این دو فرگریه که ما میتونیم ببینیم. ممکنه فرگدی که مثلا ما اولیه باشه. ما نمیدونیم کرومه، کرومه تفسیر کردن. ما فقط میدونیم اینها همخونی دار با اون داده ژنتیکی که اولیش سرزمین ایرانویچه در شمال سغد، چون دومین سرزمین سغده. بعدیش مرو و بلخ و فلان هراط این الفاظ. این میتونستی جور دیگه هم بنویسه. به یه جا رسیدن دو شاخه دار میشن. بله، یه شاخه داره میره به شرقشون اون درود پنجاب و هفت رود داره میره. یه شاخه داره میره به غربشون دو شاخه شده. هر اتفاقی میتونه افتاده باشه. من کاری ندارم تا سروم شاخه ر نگاهم می‌کنه که ترتیب داره. بعد از اونم دو شاخه ها ترتیب دارن. اون دو شاخه شدنشان بر اساس داده‌های ژنتیکی شما ما رو نمیدونیم چی شده. ما نمیدونیم بقی تو چه زمانی رخ داره اصلا نمیدونم چه اتفاقی رخ داره من سراغ قاضی شو نه نه شما باید داده داشته باشین چه اینکه مثلا مثلا دستگاه رادیو و این چیز گرفته نیستش مثلا بگیرد رد این رادیاکتیو اینجاست رادیواکتیو این و این شکلی نیستش که ما یک سری خون ریختی اینجا اینو ور می‌داریم با فلان قدمت میگیم این توش دیده شد یاس خونه جدیدتر پیدا می‌کنیم مثلا اول 1350000 داشیم می‌گیم بس دومی دو هم اینجاست بس از اولی اومدیم به دومی دو تا وقتی یه چیزی که پیدا کنیم نه ببینید شما الان برای من که ژنتیک نمیفهمم باید یه جوری من فرض کنید من یک شنونده من تو خونه نشستم ژنتیک نمیفهمم این سوال برام پیش اومده بعد یه جوری برای بعد توضیح بده من بفهمم واقعا ببینید یک نقطه ای دیدن به اسم آسه میونه که در اونجا هاپلو گروه R پیدا شده R قدیمی‌تر از R1 این آره که نیای همه ای ما هندوروپایی‌ها هست، این در همه هندوروپایی از تای انگ... ایسلند بگیرید تا تای هندستان واسو. اینو ما دا اجدادمون داشتن. این با قدمت 24034 هزار سال پیش در آستین به گزارش شده. قطعاً نمونه‌ای پیدا شده به این قدمت که اینو دیدن یا با نرم افزار میان مثلا میگن از این به خاطر به این تبدیل به چه مقدار فاصله هست و این محاسبه میشه. قدیم این نمونه کجا دیده شده؟ اینجاست نمونه های بعدی کجا دیده شده اینجاست این دو نمونه چهجوری میتون بهم برسن در این نقطه جغرافه در این زمان اینا نرم افزار هست برای چیز تو سایت NCBI به این نافزار به معرفی میگو NCBI اینا به این صورت قابل پیگیری هستن چیزی که خیلی ساده است اولیش قدیمیتش تو سه میان هست دومش در خاور میان حالا قابلقا تو بسط اسرائیل باشه مهایی نداره. چون رو بیتر؟ زمانش کردیم دوامی 18500 سال متوسط از 12500 سال گفن تا 24 سال این دانشپندان علم ژنتیکی همچون چیزی پیدا کردن این قضیه کوچه آریایی های ما... هندو اروپایی نمی اونها اونو بصد بس... هاپلو گروپ می بینن نه نه من چیزی دیگه یه دارم میگم ما اول این برنامه یه فکر کنم 7-8 قسمتی داشته میگفتیم که این نظریه هندو هند و اروپایی‌ها مهاجرتشون خنده‌داره که فلان و و اینا نمی‌تونه یک چنین مهاجرتی در 3000 مثلاً الله 700 سال پیش اتفاق افتاده باشه این داستانه این چیزی که شما دارین میگین قضیه رو کسان می‌بنده حل کرده ولی پس چرا هنوز وجود داره خب قضیه اینجاست که اینا وارد باستان شناسی نمی‌شن یا نمیذارن بشن چرا ببینید الان واسه یک فرعون شده بهش ببین واسه یک فرعون مصری شلوخ یرمه تو تنخ آ مثال, مثال بزنم قشنگ درک این فرعون تو تنخ آمون سلسله 18 ها مجسمه ها همه سیاه رنگه جسد سیاه سیاه‌پوست این کشور جنوبی Eritre دست گذاشته بود رو اچ یو پی دست گذاشته که این فرعون باید متعلق به ما باشه نژاد ما و تمام دود ما متعلق به ماس پدر باشه و داش اصلا سلسله به همین یکی از شاهکارهای تاریخی مصر رو مستر نش اصلا به هم ریختن بالا پایین نوع مومیایی کردنو گفتن سری بوده سوزونده پوسته اونو گفت آقا پوست سیاه سوزوندهش با سیاه شده رفتن علم ژنتیک از انگلسان نمورد دکتر ژنتیک آوردن نمونه گرفت رفتن انگلسان گفت آقا نه تنها جزء جمعیتای سفیته است بعد هاپلو گروپ هندورپیان توش میتونه پیدا شه خیلی حرفو یک مورد ببینین اصلا الان ردیف کردن که فلان جسد از فلان ش... متعلق به فلان شخصه این هاپلو گروپو داره یعنی این هاپلو گروه ها رو داره بعد خیلی خنده داره خ جمعیت های آسیایی صحبت میشه آسیای غربی درشته این هاپلوگرروپ مطرح میشن ولی جمعیتی مطرح میشه <تصفح> یعنی چی؟ یعنی میشه دلیلی من احساس رو کنم اینا هم ووس های هستی که بل چنگ جهانی دوه واسه این واژه آریایی جار ایرانی این تو این پنج سال که خیلی تبلیغات آریایی زود ای از خوبیت ایرانیان شد و اینا نه اا که از کتیبه بیستتون بگیر تا نقشه رس و کتیبه خش شده تخمشید این واژه وجود داره. این س... اون واژه آریا خونده نمیشه حالا به هر سو اون خوش بحث زبان شدهتون واش نمیشه. ولی اینها به این صورت تحلیل میکنه شما بری قیاس کنید مقالات ژنتیکی که هاپلوروپ های مونگوللا که مغلی رو بررسی میکنن قشن توش واژه های چینی میاد چینی های شمالی فلان کردن چینی های جنوبی فلان کردن ولی برای آر و آ یک کلمه هندو اروپایی شما تو مقاله کارافت پیدا نمیکنید فقط بحث هاپلو گروه بگه این حساسیت داشته که مقالهش چاپ بشه. چی به چه اسمی اون... اون گروه هاپلو گروه صحبت می‌کنه؟ جمعیت هایی که داره... صحبت نمی جمعیت هایی داره خوشه ی... مثلا هاپلو گروپی آر این شکلی خیلی پیچیده صحبت می‌کنه. از... نمیگه میگه آریاییه، آن... سامیه یا که شما حوصله نکنید برید بخونید. من مثلا علاقه مندم ما یه 4 تا وارجنتیک پاس بخونم بنمیشه میگه. این شکلی صحبت می‌کنه. مثلا یعنی مثلا گروه... جمعیت های گروه این مثلا یعنی شی این چیه مثلا این یک چیه اینو خیلی بحث توش اینو این شکلی مطرح میشن علمی شن دانشگاه همین شکلی هست ما به جمعیت ها نماشون جوالی پروز وقتتون تموم هست ولی تقاوت فرگه دوبوم تقاوت فرگه داستان جمشی چه کتاب آقال من با... کلیت این کتاب موافق نیستم ولی رفرنس من در این کتاب به اصطنابی رفرنس خارجی تا کتاب تا آقای رضا قی... مرادی آبادی بله که کردیشم مهاجرت هاریهیاس کوچ هاریهیاس الان ذهن ذهنم نیست یه همچین یه کتاب به اسم بیشتر ندارم اونجا یک نموداری هست از رخدادان ها من به اون علتی گفتم به علتی که جا... زرتوش 6600 ساله میشه ما سالهای پاچان از متون داریم بیاریم مقب میشه جمشید بوده میشه 8600 سال پیش و دوره سرمای منطقی شده مردمانش رو از بخشی از مملکتش طبق متون که از سغد تا فارس جوامبجا کرده آورده به بخش جنوبیتر که متون میگن فارس بوده یه جمعیت در جابجا اینا مثلا استانی وارد داره مردم و از قفقاز که یخ می‌زدن ببرن مثلا تو اوکراین اینم چیز اتفاقی در اون کتاب ایقیاس آبادی یه نمودار دقیقا به همون دوران سده 8600 پیش از میلاد سده هفتم هزاره 9م هزاره هفتم میشه 8600 پیش از میلاد حضوره دقیقاً دمای زمین در افت می‌کنه منطقه در افت دقیقاً این سهم مالی چه‌سالی باازه است که 8600 8600 دقیقاً به هیچ فشم چفت این هست خب هست دیگه این هست خب شما من دلوقتي دلوقتي دلوقتي برم مراجعه کتابه دراست 15 ایران بری اگه افتیدید به ما فرصتی شد منم اون نموداره رو کپی می‌کنم کتابو خودم دارم من خودم مراجعه می‌کنم اگر شد خودم عکس می‌گیرم و این دقیقاً اون یه اتفاق جهانی است بله از شمال اومدن به جنوب همخوان با فرگد یک یه اتفاق محلی است در دوره پادشاهی جابجایی جمعیتی کرده بخشی از من بکرده بخشی از مملکت خیلی متشکرم دو دقیق بیشتر از فرصت استفاده کردین درود بر شما به شنوندگان گرامی. به دو قول دوستان راست میگه فیروزیه ما امروز هم یک مقدار چیز اومدیم. ظاهرا اصلا قرار نبود امروز زفت باشه. همه بچه‌ها یه جوری جمع شدن ما هم سوادمون همش رو همشو نیوردیم. ببینید ما قرار بود که چهار تا مؤلفه رو بحث کنیم درباره دوره جمشید. هنوز تو بحث بخش اولش بودیم خاصکا که اساس میانه رو رد کنیم یا بپذیریم اینا. چهار تا مؤلفه داشت، مؤلفه دومش یخبندان بود که اصلا ما قرار بود در مورد یخبندان صحبت کنیم. بحث‌ها اینقدر مخشوش شد که اصلا دیگه رسیدیم به اینجا که ببینیم روش تحقیق و اصلا نقد کنیم. ما ظاهراً روش خاصی تو این بحثا نداریم. تو بحث یخبندان من میخواستم اینو مطرح کنم. ببینید. اولا کسانی که میخوان یه نظریه ارائه بدن ده بار گفتیم، بازم میگیم بدون زبان‌شناسی نمیشه تاریخ نوشت و نظریه داد. اما هیچ زبان شناسی تنها با زبان شناسی چنین کاری بکنه با باستان شناسی تنها نمیشه تاریخ نوشت اگرشه بدون ز زب... باستان شناسی هم نمیشه, نمیشه این کار همه دانش ها همینطوره ما گفتیم منبا داده ها بنده که می اینجا میام اثار در ژنتیکی میکنم من یک مشاور ژنتیکی دارم آی جمعشیده از این میان کارشان سرشد از دانشگاه ارانه ع اگه میام حرفی میزنم میرم سنعت ژنتیکی رو می باشون مشورت میکنم و میام اینجا میگه دوستانم همین طور اگه آقای فیروزی میخواد مطلبی در باستانشناسی بگه خب حتما به یک منبعی مرجعی مراجعه میکنه یا آقای کریمی زمان که میخواد درباره باستانشناسی در آسیه میانه نظر بده خب حتما باید برن با منابعی اینا مورد همه من ببینید دوستان وقتی میخوان در این باره حال آقای فیروزی که اصلا فرضیهش مال بعده ی هم بارها اعلام سرمای منطقی بود. دوستان که ما در باره یخ چیز کنه حتما برن این آخرین پژوهش‌ها درباره یخ بندان‌ها رو ببینن. من روزا میبینم درباره ی داره درباره ی هزار سال پیشش پژوهش میشه. اروپایی‌ها پژوهش میکنن در اسرائیل میشه. گندم ساله در اسرائیل پیدا میکنن. بعد ما اینجا میگیم که 8 سال پیش همه خوش چیم بودن. یعنی یخبندان رو برم ببینن یه تقسیم بندی ساده ای داره خیلی ساده بگم یخبندانی که در 13000 سال پیش، 12000 سال پیش احساس شده و نشانه هاشو میبینیم، این یخبندان نیست، این اثبات شده آخرین ها رو برم ببینن، این برخورد یک کامت یا ستاره دنبالدار با آمریکای شمالی بوده که پس از آخرین یخبندان که یفته تا 18، هزار سال پیش رخ داده. که اون آخرین یخچالندان طبیعی زمین بوده بر اثر اون حرکت قیفمانند محورش اون یخچالندانه این بر اثر برخورد اون شاپسنگ با آمریکای شمالی نیم کره شمالی باره یخچالندان کوچک میشه اینا رو با هم قاطی نکنن علاوه آخرین یخچالندانی که ما داریم ریفته هزار سال پیش اوجشه که خلیج فارس کاملا خوش بوده یخچالندان پیش از اون حدود 32000 سال پیش بوده بله. پس شما ببینید دو تا حرکت نشانگرهای ژنتیکی در نیمکره شمالی داریم در جانوران و گیاهان شاید یکی بگیم اگه گیاه پا داره بریم پجویش کنیم ببینیم بله گیاهام پا داره با زمانی که یخ بندا میشه گیاهام در نیمکره شمالی ژنوماشون به سمت جنوب حرکت میکنه در یخ بندان 32 هزار سال پیش که از پس قبل از اون گزنداش آغاز میشه دیگه جمعیت های جانوری و گیاهی در نیمکره شمالی به سمت جنوب داده شدن در تمام کره شمالی نه تنها آر و آروان ای در مخاش هم اگه انسانی زندگی میکرده داغستان امروز حرکت کرده به سمت جنوب اگه انسانی در دشت های امروزی زندگی میکرده حرکت کرده به سمت جنوب اگر کسی در بغداد امروزی زندگی میکرده اون حوالی حرکت کرده به سمت جنوب اگر کسی در مثلا استانبول امروزی اون حوازی زندگی می‌کرده حرکت کرده به سمت جنوب. اگر گیاهی بوده, گیاه بوده، اگه گیاهی در حدود مثلا سینکیانگ چین بوده اون گیاه در اون بالاها به اثر یخ بندان دیگه تخمه‌هاش نرویدن و اون بخشای جنوبی ترش هرچی تخمه‌ها به سمت جنوب پراکنده می‌شدن توسط جانوران و گیاهان اون تخمه‌ها سبز می‌شده. شما هر نشانگر ژنتیکی رو نگاه کنین در 34 تا 32 هزار سال پیش و هجده هزار تا 17 هزار سال پیش به سمت جنوب خودش میل کرده. این کوچه آریا نیست سی و هزار سال پیش کسی اسمش آریایی نبوده نمیگفتن سلام سلام ما آریا ها آمدیم منم نگفتم جیزی متوجه این؟ نیاکان ما آمدن اینا از آسی... از, آسی... از میان به ایران هستم. کجا بوده؟ شما هر جای نیمکره شمالی بودین حتی اگه در ماساچوست بودین به بخش جنوبی حرکت میکردین. عذ میخوام بالاخره گوروزا در اروپا هم گوروزا بسمت جنوب حرکت ما از منطقه شمالی ا اومدن به جنوب دیگه حالا هر آمدن جنوب اینجا کی زندگی میکرد؟ وقتی رسیدن به جنوب البرز با کی برخورد کردن؟ با, با, کی, با کی برخورد کردن؟ نه کر اصلا مطرح نیست برای من. اصلا برای اصل مطرح نیست. وقتی میگی نیا ما یعنی شما پشتت جنومت از است کاشان امروزی کی زندگی میکرد؟ من کاری ندارم. در احواز امروزی کی زندگی میکرد؟ اصلا برای من غیر علمیه برادر من. اصلا اف... اصلا به من کاری نداره اینجا که حتی میگین نیاکان من, من... جا من... جا من... جا... یعنی مادر پدر من از اونها جا... یعنی هیچکس اینجا زندگی نمیکرد. یک جا به جای یعنی یک جمعیت, جمعیت به مقصد چرا رفی داره؟ شما میگین نیاکان ما؟ میگه یک جمعیت و بله برای اینکه این دوتا تا هاپلوگرو مال جمعیت این این رو جمعیت اندوروپاییه. اندوروپایی زبانه اصلا اینجا مطرح اینجا نیست برای جامعه جمعیت چرا وقتی درست اینجای بوده جامعه یعنی چی اصلا ر... ارت... اینجا باید قالب باشه جمعیت باید قالب باشه ژنومش قالب بخواد. کنه قالب... یعنی جمعیت فلات باید کمتر باشه جامعه انبوه آسیه میانه وارد بشه که بگه ژنوم من قالب شد دیگه چون... اینجا احتمالاً چون جو بوده احتمالاً ایران دو تا هاپلوگروپ ببین دومی که دومیشش بحثی کردن جیتوشی هست این خیلی خیلی بالاست این خیلی ولی چون در فلات در مخصن از نیمه شرقی به شق آروان خیلی فراونه و ما هاپلو گروپ های سامی مدیترانهی نداریم این نشون میدهی که جمعیت مهاجرت از شمال به جنوب یا با یک سرزمین با سکنه خیلی کمرو برو شده چرا چرا؟ من به چه علت؟ من به چه این علت من نیستش من میخوام از نظر جنیتیکی فقط صحبت کنم از این یک گام بعدی است. معلم می خوام از نظر ژنتیکی بگم که چرا هاپلو گروپی که اینها از آسیای میانه و آوردن قالبه؟ اصلا دو تا آسیه جواب داری. میانه نیاردن. این تفسیر شماست. دو تا جواب داره. حالا مقالات هستن. آره با دوستان مقاله برن سرچ کنن ببینن کاراف داده هم چیزی نمیگه. مقالات دیگه. این مقاله مقاله‌ای نمیگه. حالا به حال. قابل سرچ. جمعیت ای من جا به جا شده و میراثش تا الان هست. چرا این اتفاق افتاده؟ این میتونه. ببین من نمیدونم بگم کدوم از ایناست. کلی حالته. یا جمعیتی در مقصد به نبوده این حالت یا جمعیتی بوده و نابود شده کل بخار شده یا جمعیت به کل فرار کرده یا جمعیتی بوده از همونجی این از نظر انسان شناسی باعث می‌شود جمعیت باز فرار کرد حالات دیگر که نیستش که یا یک جمعیت نباد بوده باشه که اینا می‌بینی رستم دارن یا یک جمعیت با خورده شده باشه یا یک جمعیت بالا از همون جنس بوده باشه یک جمعیت با در رفته باشه یکی از این حالاته چون ما هاپلو گروپ مدیتران ای سامی فلان نداری. همون جنس بوده باشه؟ چی؟ حالا صحبت همین میشه اگر که اگر به نظر میرسه از بخار شده ما باید دقیقاً یا نبودن خیلی منطقی تار. من احساس من نظرشون رو این کار نشده. نشده. آره نه کار شده. چرا داریم؟ هست اینجا این انسانه. این این تو بادمای خود این تکام انسان این شرق میشه. این شما باعث ثابت کنی ایرانو تحت کرده این وزره ثابت میشه این جمعیت به این صورت ثابت ها. میشه ببقو. که در اقیانوسیه و شرق آسیا هر نژادی که میبینید از اجداد شفاطین عبور کرده این یعنی رفتن به دوستان و بعد رفتن به جنوب آسیا شرقی بعد رفتن بالا و اوکی ما حتی خروج بل... از انسان از افریقا الان داری کوچ میبینی یعنی بار و بنر جمع کردن با زن و بچه نداره خیلی جدی یه سری انسان اگر رفتن آمیلن... استرالیا رفتن پس جمعیتای اینجا قربوسی از کجا اومدن کاملا اصلا بس مغلطه است ال از اینجا عبور از انسان اون انسان عبور نکردن عبور شما فرق فرق میان گسترش ژنتیکی بله، کلونی میذانی کل ژنتیکی رو نمیدونی اشتباه میکنی شما که نمیتونی بگی که می کلونی میسازه می نی قبلیه همین این قبلی از اگر فلات شده, فلات... شده. اگر فلات ایران به اون دوران جایگاه مناسبی برای موندگاری بود این جمعیت ها با این... عظمت به شرق آسیا نمی رفتن موندگار می شدن همونطوری که اون جمعیت ها در جنوب اروپا موندن و به شمال نرفتن شمال خیلی متأخر فن چون اروپا مناسبتر بود ولی فلات ایران یک گذرگاهی بود برای اینا جلو می رفتن خسته میشدن یه کلونی می ساخت بقیه ادامه میدادن خودا کردن اساسای ایران... عرفا رو نشنیدن کلا از... به صدای امید می خندند ما که بماند این نظر شماست ولی انقد فلات ایران دلیل بگو برستن. دلیل هواشناسی بگو دلیل اقلیم شناسی بشت بگو بشت دلیل بگو 4000 سال از آف... شرق آسیا بیرون از بودن از آفریقا اومدان بیرون این نقش ژنتیکیش اینم نقش با زمانش بگو من خبر ندارم من خبر ده. من خبر پایان نامه داشتم پایان دفاع شد نگو که نبوده زمان داره اینا همه اینا حرکت ببینید. جنتیکی دارن خب زمان همین داره اینا فلات ایران, ایران از کن نبوده گند بوده آشخال بوده همه ازش رفتن بیرون همه در برای جی... برایی که بعدا کوچه از آسیاملی توجیه بشه ببینید آی دکتر آی ایرانی خود ها رو می تو جامعه داریم داریم پانترکا دارن میگه این سرزمین ما شما کلی این آمدین. با ی حرفا راست میان به خود. ببینید صد هزار سال پیش که دیگه حالا سرزمین منو شما و این اون نداره که خیلی منطقش ساده از نظر از از از شما شانسی مردودی نمیتونید که چرا ایران رو ترک کرده ذهنه بخونم ایران رو ترک کردن ببینید صد هزار سال پیش از آفریقا دکتر میگن خان دکتر از آفریقا خارج شد 70 هزار سال پیش بخش از زمین جمعیت در هندوستان بودن 50 هزار سال پیش اقیانوسیه بودند یه ایده سکونت سو... کوهندتر در ایران رو نشون میده سکونت نیست این, این سکونت حد سکونت اصلا این شروع میکنه ای اصلا یک جانشین بودن این جمعیت هاشون مامود ها رو میتونین در نظر بگیرد میرن دو تا مامود از صد تا مامود خسته میشن ایست نیکنن 98 تا ادایی میدن تا از اون جمعد صد اول پنجاه تا به آسیای شرقی میرسن این 50 تای دیگه در فاصله هایی که تیکران ایست و کلونی ساختن و حکومت از بسایل شوران نجادی آسیبی میانه چه خوبی داشت که اونجا موندن و یا نشوران نژادی آسیبی چه خوبی داشت که موندن تو ایران نموندن من زمین چه حس زمین شناس اقلیم شناس شما میگه جنتیک... من فکر میکنم ایران آب آب آب بعد بوده نموندن آسیا خوب, شباهد... خوب بوده خوب شباهد... بوده است اینو نمیگه خانم مقاله... ای. کارافت فقط رو هاپلو گروپ نام برده یعنی اگه مقالات پیشی مثل رگوئرو و دیگران رو می خوندید که خاصگاه ها رو نام میبر می که این هاپلو گروپ هایی که این خانم کار کرده با چه خاصگاهایی هستن خانم کارافت دیگه نمیاد گاری چرخ غاری رو مثلا کشید تمام دارم. جانوران و گیاهان در زمان دو تا یخ بندان اخیر به سمت جنوب حرکت کردن شما اینو میخواید به کوچ اریه ها به ایران تیس کنی بعدش میگیم ایران چه جوری خالی بوده میگی نمیدونم حالا من با کسب اجازه از خانم دکتر و این مسئله باید حل کنم ببینید این بزرگترین شاهد من که از فلات ایران جمعیت اکثر عبور کرده و نموندن تشکیل جمعیت‌های بزرگ آسیه شرقی است و اقیانوسی است چون اگر اینجا جای خیلی خوبی بود داره لفظازی اج... می‌کنه می چیزی به من جمعیت‌های بزرگ کجا من نمی‌فهمم یعنی کجا چی جم... کجا اینجا جمعیت غالب در اینجا شکل گرفته تمدن دف... از اینجا شروع شده شروع اینو نادره. از اینجا اینجوری اصلا فایده ای اگر ببینید اگه اجازه بدید من من جمعیت شناسم نمیدونم که آیا واقعا جمعیت ها فقط میخواد ثابت کنی که قبول کنی این از ایران رد شدن قبول کنی این دیگه نه نه. شما این لفظاتو من آشنام دید این چیزا این مبعثتو آشنام یکی دوتا منبع به ما معرفی بکنید مبنی بر این که یکی این که این جمعیت ها از آفریقا اومدن از فلاس ایران رد شدن رفتن قالب شدن در آسیا شرقی جنوب شرقی و یکی این که این فعلات ایران زیاد حالا جای از نظارش نمیدونم از حالا زیست جایی برای زیست جایی نبوده, نبوده که جمعیت های کسیر درش بمونه من فکر می‌کنم کنم از نمیدونه چی دران کتاب ها. های ترجمهش الان ها ها موردی نمیتونم بهتون بگم که فلان نویسن این فلان ترجمه ولی چهار تا ترسل تا ترجمه داریم از کتاب‌های انسان شناسی در به زبان فارسی همین چهار پنج سال ترجمه فارسی نبود ترجمهش مشکل, مشکل اگر به اینترنتی باشی خیلی ساده بزنید بزنید که همون تکامل انسان و خروج انسان از آفریقا براتون توضیح میده هم مسیر رو و هم چگونگی جایگزینی و تشکیل به های دیگری رو برای مثال شما بزنید در اینترنت mongoloid پاپیلیشن مثلا حالا ذی مجموعه شون بهتون میده بعد مثلا یا بومی‌های مثلا استرالیایی قشنگ به شما میگه این از کی وارد این آره شدن، این جزایی شدن کی رسیدن به جزیری تاسمانی کی تو تاسمانی منقرض شدن تمام اینا مشخصه ما اگه بخوایم روی این خاک سر هزار سال پیش تا از سو بعد باید دایناسور ها خیلی خوشحال میشیم در فلاس ایران باشن ارانیوم و علماس در فلات هم در فلاس ایران باشن از سم خودم نجات پرست هزار پیش رد پای جنتیکی میرسه به استرالیا اما صد هزار سال پیش در ایران بوده. دم هزار سال پیش در شمال هم بوده. دست بوده. مشخصه. دیرتر رسیدن به دیر اونجا. خب شما ثابت کردن الان من بخوام دکتر جواب میدم. چرا ببینید این این, رفته جمع... این رفته بوده. رفته... جمع جمع... ببینید صد هزار سال پیش از آفریقا به هر علت تکاملی خارج شده. خب این که مشخصه دیگه انسان هوشمند خارج شد ناخیر خارج نشد دسترش پیدا کرد اونجا رو ول بلن... نکرد بلن... بلن... اونجا هم هست. اصلا ول نکرد نظر این من همه نمیکنن همه امینه یک جمعیت چه شو که ایرانو ول کرد ایران هم ول نکرد این جمعیت میگم 100 نفره 100 نفر پس نگرفتن من 100 نفر اصلا عرض کردم که میرن جلو دو نفر خسته میشن یا خود شما, شما نمیتونید درصد دو درصد 98 درصد بدی از منم کلیات رو میگم و با توجه به شوالیه کلیت نیست فرض شماست دوست داری اینجوری دو بدی اونجوری 98 درصد سند علمی به ما بده سند بده سند انسان فرس... فرس... این, این همه بده. کتاب انسان شناسی هست جو... هیچکدوم اینا چرا مادر چرا چرا تعداد انسان های نانتر دلار اروپا بیشتر از ایران و و این دقیقا همینی شما اصلا به منی که در این زمینه هیچ مطالعه نمید میخوام قیاسی بهتون بگم ببینید یه قیاسش انسان های نهاندرتال چرا انسان هومو هابیلیس فلات ایران پیدا نشده یا انسان هومو ارکتوس اینا بعدشون تو آفریقا موندن، برایشون خارج شدن ها، یعنی می‌خوام این شکلی بگم اومبریس اصلا آفریقا خارج نشده ولی خب ارکتوس خارج شده. در می ارکتوس در جا، الان من یارم نیستا که از آفریقا خارج شده. حالا من نمی‌دونم کجای آفریقا یافت شده، ولی سرچ کنین همه اینا مستند میاد. اصلا از آفریقا خارج بشه ناگزیر بیاد وارد خبر می شه. نه، می تونه از ترکیه امبروزین و بره اروپا. همون کاری که, که ها کردن چرا تعداد نانتردال این خیلی ای خوبه چرا هایی که در اروپا هستند فراتیرا بیشتره چون تعداد هایی کشف شده در اروپا بیشتره چون کاوش بیشتره ما به من ما رو آمار صحبت بگو انسان نوین رو شما نانتردال داری توجیه تو ایران انسان نبوده حتی نه انسان بوده ببینید وقتی من راحت وقتی که یک سرزمینی در پسش چندین گروه نژادی بزرگ وجود داره و سرزمین فعلی در سمت شپش و سمت راست و بالش جونش جمع... اثر جمعیتی بزرگ نمیبینید چون نجاد زرد شمالی جنوبی نمیبینید چون نمی جمعیت بزرگ انسانی ندارید. پشتش وقتی پشتش یک جمعیت بزرگ هست از این سرزمین اوقایاتی نشستن که از این سرزمین یک جمعیت بزرگ عبور کردن بزرگتر از چیزی که موندگار بودن این یک واقعیت که خوشمون بیا چه نیازد وگرنه اونجا اون جمعیت‌ها تشکیل نمیشه با اون عظمت که ارغوز یک از هر مثلا اون جمعیت نمیتونه رفته باشه اونجا و بزرگ شده باشه قاعدت. یعنی اون جمعیت باید ببینه اینا, اینا اینا اینا اون زق جمعیت زق دقیقاً نژاد زرد زرد شده اون با خودش رشد کرد شما نشده. نمیتونی بگی اینا تو ایران زرد شما شدن شما های انسان سیاه دارید سیاه افریقایی شما باعث نمونده که انسان ارسان ایرانو ترک شناسی. کردن همین سند انسان شناسی بده که انسان ایرانو ترک کردن موضوعم پیچ نده کشتی داشتن قطار نده. داشتن هواپیما داشتن ما حتی میدونیم نجار... می اینجا ما حتی میدونیم اجال ببینید اینجا 70000 نفر بیش نه هندستان ایست کردن حتی میدونیم این اجال دراویدیاتی یعنی که اینجاست حد وسط نژاد سیاه افریقایی است نژاد سفید و نژاد زرد یعنی این حد وسط به افریقا رسیدن داشتن به سمت نج... پایه‌های های زرد می رفتن. و اینجا ایست است بزرگ بوده و تازه از اینها جدا شدن رفتن به مناطق شرقی اینا زمان درایویدی این... درایبیدی... این... نشونه زمان زرد هم دیده شده د... حالا این بحث زبانشناسی است اصلا, اصلا تکاملی من صحبت کنم. اونایی که زخیرگاه نراشن قضا به نظر کولی پشتی ببرن این جمعیت این مسافت رو با اون حالت کوهنه نوسنگه نمیتونم بگم پایینه سنگه نمیتونم بگم نمیدونم چی بگم اون سر هزار سال پیش فقط با چون این جمعیت در طول مسافت میمرده بیماری میکشتشش حیوانا میکشنش فقط با جمعیت بالا بشه شما فکر میکنی داشتن راه میرفتن کوچ میکردن عزیزم شما فکر میکنی انسانای نخستینم در حال کوچ بودن انسانای نخستین زندگی میکردن در سرزمینها جمعیتشون که رشد میکرد در سرزمینهای مجاور خودشون مستقر میشد انسان شناسی آن. اینه این کوچ از ذهن بیرون کن هوش بالایی داری بحر هوشی بالای داری ماد رو خوب داری کار می‌کنی حیف حیف یه کوچ رو از ذهنت بذار کنار حتی داری انسان شناسی با کوچ تو می‌گیری ما آیه کریم ایمیگریشن این چیز ایمیگریشن این چیز همه اینا تو مقاله‌ت این است ایمیگریشن کوچ جابجایی بعد افق ایران مترسه این جمعیت که اینجوریه یه هفته است درست می‌کنه اصلا گیجان بعد بختهاتون رو ببندون دیگه نمی‌تونن ببینید تاویل کنند برای انسان ها برای زندگی به سر زمین ها وارد میشدن نه بری گذشتن و رد شدن کجا میخواستن برن واسه ما مکه البته ببینید بعضی این جا به جای یا به قول شما از آفریقا بره مثلا جنوب شرق آسیا برای من من تا تصور اینا گیج هستن ببین برنامه نداشتن اینها ببین مثلا میرفتن امروز توت فرنگیش اینجا می خورد بعد مثلا با بچه‌اش میرفت میرفت اونجا 4 تا زن به بچه‌شون می میرفت زن بچه‌م که نداشتن که اون جمعیت بعد میرفتن به یه جنگلی میرسیدن اینجورا می پسند یا بی بیابون می دسیدن این مسیر رو نمی پسندیدن تجهیزات امروزی از آفریقا بخوام را بیافتیم بریم به شرق آسیا بریم استرالیا اصلاً نمیتونم تصور کنم شاید منو شما نتونیم یک جمعیت انسانی صد هزار سال پیش یه همشکار این اتفاق افتاده و ما نمیدونیم چرا این اتفاق افتاده جمعی شما جمع هاش هستن دوستاره درباره انسان شناسی هم هر به طبق فرض <تصفح> نظر ذهنی خودش نظر بوده واقعاً یعنی انسان از آسان سکونت انسان در سرزمین ها رو به کوچ تفسیر میکنه مکانه‌ای <تصفيق> هم نداره. ذهنش درگیر این واجوی پوچ یعنی فکر می‌کنه اینا ور می‌داشتن اینجا رو ترک این کوچ هدفمنده. زندگی می‌کردن. جمعیت ظرف پنجاه هزار سال گسترش پیدا کرده. در سرزمین‌های کنار خودش مستقر شده و معلوم سرزمین آسیا به سمت شرق گسترده است. و این سرزمین رو که این جمعیت رو کم کم به سمت شرق می‌بینیم. آی فیروزی همه انسان‌ها کوچ کردند. از اول هم کوچ کردن. الان هم دارن کوچ, کوچ میکنن. ما هنوز هم داریم کوچ میکنیم. اصلا کوچ تو کوچ کوچه همه اصلا ما آقا گوز یالدا آفریقاییم. همش در حال کوچیم. فرنده کوچ میکنن. حالا دیگه ای اصلا من دستم چیز دیگالم اصلا کردم. به هر حال من از که وقتی که میخوایم که هیچکی نمیگه انسان از آفریقا خارج نشد. شما که بگی من دارم میگم پس درست میگم مثلا ربطی نداره انسان ها در سرزمین ها مراجعه میکردن و حضور پیدا میکردن و زندگی میکردن همین من... اصلا ذهنشون نبوده که ما اینجا گذر کنیم ای نمیدونستن شرقا این خانواده زبانیش که شکل گرفته آقا 100 هزار سال پیش داریم صحبت میپنیم بنده خدا چی داریم؟ آقا، مخباره شده، زمان چینی با زبان هندورپای فرق اگر, اینا... موضوع اگر موضوع این هزار سال پیش رو سال پیش اص... سال پیش نه نه نه، اجازه بری نگه این 100 هزار سال قدمت داره اص... گسترشی که ایشون میگن کوچیکه، آی فیروزی میگن یا هر چیزی که ما میگیم ببینید ما در مورد یکی دو سال، یکی دو هفته یا یکی دو قرن نمیگیم در طول چند ده هزار سال مثلا یک کوپه جمعیتی مثلا از آفریقا میومد بیرون، دو سه هزار سال مثلا یه جای زندگی میکرد. گسترش پیدا میکنه. اینجوری یک حالت بهش میگن تو استراتژی آمریکا بشه استراتژی این بود که بس... فلات خالی از جمعیته. بس... جمعیت همین. ترک کردم و رفتش خانواده زوائدی من تو نمیتونی فرض ذهنی خودت اینجا اینجوری قائل کنی که سنت سنت ده. از شمالو توضیح در دادم تو حتی گیاهان هم ماش به سمت جنوب حرکت کردن شما بالا. ما از انسان بومی به قول شما که 34 هزار سال پیش در فلات بوده یه دونه تراشه پیدا کردیم یه مداد تراش پیدا کردیم یه قاری که پوش بود آقای, آقای... آقای... دکتون آقای... آقای... موهبی بوتو. در پاب برنامه های پایانی برابری ما چند تا سکونتگاه انسان در زاکروز خوندیم خیلی زیاد سکونت هایی که اتفاقا نبود هاش های فیروزی هلندی بود دلمون نمی سوخ این کار حد چیزی که تو ایرانه ما در دانشگاه بهمون درس درست دادم چما ممکنش میشی؟ ممکنه نیستم همام اونها چطور یه دونه جدید هست پارین سنگیه ساله خب ساله. بله اینا موارد من که اینا موارد تکوتو جمعیت اندک درونه یعنی طرف یه سر نانته داد اصلا میانه نشون بده اصلا آسیای میانه, بده؟ آسیه میانه, از آسیه میانه نشون, نشون بده خیلی صحبت خوبی اون دفعه که من پاس میدم به خورد آقای کریمی آسیای میانه بهشون توضیح میدم اصلا تو اصلا تو خوزستان الان تو موزه شوش موزه اشتباه نکنم رو ساختن رو ساختن خب شما علادش میگفتین نیست که من نگفتم گفتن کم تره که اومده می دونید اون جامعهاتی که از آسیای جنتیک... می تو می میانه تفر ژنتیک ارائه ژنتیک تو تو جریان ژنتیکی که شما تو میگی تو میانه چن تا از سیخو میخواد بگه کجا دارن من ژنتیک دارم من میگم شار ژنتیکی داره که یک یک شارهش ژنی اصلا تو نمیخواد گوش بده میگم حتی در آن در نیمکره شمالی به سمت جنوب مرکز یک شارهش نمیخواد نمیخواد گوش بده یک شارهش همون دیگه جنی... چون می دونید چرا دلیلی که هر تط ژنتیک اینطوری میبینه چیه چون فکر میکنه فرگرده وندیدات اینه آیا این شاارشه ژنتیکی که در به همون 34000 سال پیش بوده، دلیلش تو ژنتیک ما وجود نشد؟ آیا این شاارشه ژنتیکی که شما ادعا می‌کنید فلات ایران به همون زمان رفته به جلوبی‌تر، کجا گذار شده؟ رفته به عربستان گذار شده؟ چون تو دریا که نرفتن که، کجا رفتن؟ آیا دایته؟ این شاارشه ژنی اولیه‌رو ما داریم. آره آره. شاالش رو نداریم. نمودار ژنی رسم شده، همه انسان هم اینو قبول دارن و داره مسیر رو نشون میده. اینم نشانگرای ژنتیکی که تو جای مختلف تشکیل شده. هرچی هم میگی از نظر انسان شناسی مردوده شما میدونی قدمت, مردود قدمت این و ام چنده. سال. یه روزه روزه سال. بب... سال. این چنده؟ خدمت این و این میدونی چنده؟ یه رفزه هزه میدیم ما گفتیم رفزه در این بحث ها خیلی دیگه نه خب به جای بلی کسی میشه نه همینجاست ببینید اگر آها میخواد درمول جنتیک صحبت بکنه آها ایران میگم یه دوستید هم داشت کتران خب اون آقا رو شما بیاین چرا از طرف ایشون صحبت می‌کنین؟ آقای آدم نیستن آقا، علم سند انسان این تفسیر اشتباهه. ایران هیچ کس نداشته سند. شما از ایشون ببینید شما با سند رو صحبت. فقط سند که وجود داره یعنی نمیفهمه در زمان کردن رفتن به جنوب ناکجا هر خانواده زبانی داره همین حرفو تایید میکنه یکی دیگر نگاه کن داره 3000 سال پیش آقا چی آقا سه هزار آقا سه هزار آقا سه هزار سال آقا داره داره بیگه. چه صحبتیه زبان هند و اروپایی تا تو سال پیش رفتن گفتن آقا ما میخوام تو هزار سال پیش بدیم تو آسیای میانه به ایران با, ایران با ای آقا یکی دیگه توی, دیگه توی دیگه بل... بل... شرق دیگه آ... اصلا کسی کاری همه سیستم نگاه من بعد درم. دستش دیده یا ندیده. خاصیت بشمره ما بسته چی میگیم دستیمال. یعنی اگر دست ده سه شده شده ده. ده که عربیش میشه اشاری خب بابا یهندو اندازه این بگی یک دو صد چهارم شرفهش نه ده. اینا دیگه بلد بود یا نبوده؟ اندازه کف دستش که خودشو شناخته نمیتونه بشموره. من چطور میتونم بگم اون که اون چینی که چطور میتونم میگم آقا معلومه که آقا این کسیه که من دارم تو اسکاندیناوی میبینم یک تو دهش با من یکیه. پس معلومه با من تو یه جا یه مدت خیلی بزرگی ساکن بوده. کوچ حرکت نکرده. این صحبت آرسور فیزیو من در اینجا تایید میکنم که آقا گویا یا سیو یه جا با هم جم ترک نکرده. اصلا نشون میده آقا این ستاره رو که بعد چطور میتونم به عربی که به ستاره میگه کوکاپ؟ عرب تو شده با... دو... خدا شه. من... ده شهر گم میشد بعد کارو خداش. نمیشه؟ من نه ببینید من عربستان چرا درخواسته؟ عربستان اندازه یه و... دریا عربستان اندازه یه دریا و بدید فاصله داره به ستاره میگه کوکاپ ولی اون که تو اسکاندیناوی بازن در یه لحجی با یگرش صحبت میکنه خب معلومه که این وقتی که ستاره آسمون رو دیدیم میخواستیم براش توضیح با هم داشتیم زندگی میکردیم اون که رینه این که سواد سوعت... درسته تیکه تیکه رفتن ولی یه سری یه جا موندند حالا هابر... اگه تشکیل دادن چون چه اشکالی دارن میکنه ببینید زبان شناسی دنده گفتم به واسه گفتم در میگن این مقاله می نویسیم ما اجازه بدید؟ نه شما جغرافی ها شما, شما ببینید زبان های هندو اروپایی مشخص در چه ارز جغرافی هی هم بسید گفتن ترکیه ولی خود خدا را شوی خدا را شوی خدا, خدا شو تو شده الان این چیزی که این زبان های هندو اروپایی سمت، حتی دستور زبان حتی هشتا کیسش حتی گردش شو هاش حتی تبدیل واکه هاش, تبدیل هاش. ها همه اصلاً در کل شلون بگی زبان آسیایی روپای... هم تایید میکنید کاملا کیو تایید میکنه من نمیگم زبان های اروپایی بگید زبان های هند اروپایی آی کریمی دقیقاً اجازه بدید آقای کریمی های فیروزی شما این استدلال ها رو فرمودین که اصلا اون حرف چیه من دارم میگم که زبان شناسی داره به ما میگه که آقا این انسان ها درسته همش از آفریقا اومدن؟ بله؟ خب. ولی یه سری از های بسیار انسان از میگم از اونجا که زبان داره میگه جمعیتی باید چندین هزار سال با هم زندگی کرده باشن که بله. ابتدای ترین چیزی که بشر به زنش میاد ستاره که تو آسمون میبینیم نه نه سال پیش نبود که ستاره ر دیده انسان سال هم عقلش میرسید که واسه اون ستاره میدی که زبان شناسی داره پیشه به کلی مردوده به کلی مردود <تصفيق> کجا نوشته تو آسیای میانه مستشون شماره پدر مادر کی دیگه میتونه بگه دست و کله چش و گوش اینجاست پاس میدن به ژنتیک کجا نوشته تو آسیای میانه ببین من دارم میگم آقا ما داریم میبینیم به ویژه زبان سوختی، به ویژه زبان سقدی و تخاری هم تا ویژگی کنتمش وجود این دو تا زبان به و وجود ادیان بسیار قوی، قطعاً در آسیای میانش ببینید در مر در, مر در مرکز این اندیشه ها شکل یعنی فرمودن که آسیای میان مرکز هم اصلا تمام شد. تاون هم. هم دینی که برای ما برای هندی ها داریم، ریگ ودا داریم، هم اوستا، اوستاک اصلا کاملا مشخص زبانش ما رو کجاست؟ طالم قاسم میگفت ما ماده مادیه خ... تمام اندیشه های ایزدان خدایان دیوان اساسا شما ببینید همش در آسیه میانه است شما خ... شایمانش... همش در آسیه میانه شما مثلا من به من که ایزد مثلا اپام نپاد در کجا شکل گرفته من واقعا متفاجو نمیشم شما درک من شما به در... در... ثابت میان هست من نیازی ندارم به آخو... شما چیزی ثابت کنم درک آم... من آم... از صحبت های ایشون این بود که ما هرچی به غرب میایم این فرهنگا آمیخته تر میشن و هرچی به شرق بریم چه واژگانی چه سننی خالص تر میشن من درک من صحب... این چه چیزی فرهنگ میآوردنی چی؟ فرهنگ میآوردنی یعنی مال کجاست خب, خب این دیگه میشه این دیگه, دیگه میاد رو بخصای مغلط کاری خواهیتون قد بکنید نه بب... من, من اصلا این مغلط کاری ای نیستم شما به من ب... کنید که بر یک اساسی اپام نپود باید اندیشه‌اش در آسیه باشه باشه و جای دیگه‌ای نباشه. ای اینو کوهنده نوشته که ما داریم اوستوس شما برای من یه خط نشون باشه شما میگید من چند هزار تا پیدا کردیم چند هزار تا اوستوس زمان شما اصلا ازو بدید. اینو میگید چه دوره نه زبان شما شدیه زبان من با اندیشه من نه میگن ایشون گفتن ادیان گفتم ایزدان گفتم کدوم ایزدان ایش شما فرمودن مثلا اپام نپاد خب... گفتم شما به من ثابت کن که اندیشه اپام نپاد در آن ازیادی شکلی داشته درود بر شما ببینید بزرگترین ایزدان شما چند... چند تا لحمه از سومه رو, اک سومه رو... اکد و اصلا سومه رو اکد رو ویل کنید اصلا فکر کنید جایی بیس میان رودا وجود نداره آها. شما به من ثابت کنید که اندیشه افام نپاد در آسیای میان نشکل چه دلیل, دلیل. میان خورشید آمد دلیل خورشید یا آفتاب آمد دلیل آفتاب همین که زبان عوستان که هندترین چیزی که ازش داره نام میبره و زبان عوستان برای اون منطقه است برای من بسجله و زبان هیتیایی و زبان هیتی که <تصفح> شما <تصفح> میترا هیتی میترام که اونجا اسم زبان هیتی هست, خالی خالی خالی هست. بگن که زبان های ده ده ها زبان خلطوه. خلطوه. آه، بگن آه، بله کاملا دارم که نشون میده که که داره نشون میده که ایزدانی که هیتیا میپره اینا ایران میگه ها هیتیا کدو نام تا یکی این راست یه میترا اون دقیقا یا نکرده نماز کو جس نا چرا شما میگه این آسیه میونه یا من نمیدونم ببینید برای برقی اینکه این برقیه, این... برقیه ایزدان هیتی اینکه برقیه ای زدان هیدی اصلا غیر هندوروفاییه ولی نه نه شما یه چیزی زدان فالسیتهش نسبت به شکم سر دیگه کاملا اصلا شما چی میگن شما میگن که جز ای زدان هیدیایی میزا دهن میشون چرا یه دلیل میاره میگن برای که زبان اوستا قدیمی ترین زبان نیست که مثلا فرض کنید اپام نافاتو نام بردی کی گفته؟ شما هم مثلا خیلی از منطقه‌ای که این من دارم میگم کتابی کتینده من دارم میگم که کت... آبانیش... دلیش... از اینه آوا دلیش آب... ما اصلا این برنامه رو میذاریم این جلسه سر اینکه که بیایم جلسه بعد بگیم که زبان بخش‌های مختلف اوستا چقدر کهنه تا کجا پیش میره خوبه. خوبه. و آبانیش چقدر قدیمیه و این آبانی... اندیشه‌ها کوریانتای آوانیش شما به خاطر بسپرید درامیشت د... تو کدی اینترم. خب ببخشید معذرت می‌خوام. اون کدوم آنهیدرید آکولی؟ دو... آبانیش بویئه. و باب... درود بر که من... همون بابل. این دو شما خاطر بس بارید. من سر ببر بابل. بله. چلو خب من وسایلش میارم خدمتتون چیزم آقای هم خب دیگه اینو من <تصفح> کتیبه خ... من خودم واژشنامه آره, آره اکدی آره واژشنامه اکدی میارم معتبرترین واژشنامه اکدی همراه معتبرترین واژشنامه فارسی ها خب دیگه فرصت بگم شما به وسیله اندیشه ایزادان و ادیان بله. اصلا نمیتونی ثابت بکنی که این اندیشه ها در آسیای میانه شکل گرفته اولش من میتونم برای شما سرعت بیارم که اندیشه یک ایزدی که مربوط باشه به آب اول توی خوزستان شکل گرفته همون بیشترو میخوایم بفرمایید حالا هر چیزی نه هم نیست ولی من میتونم برای شما من میتونم برای شما یک پایان کامل بیارم که داره یک اندیشه ای به اسم همون اپات اپام نپاد یا آنهیتا رو در فلات ایران و خارج از فالو ایران بررسی میکنه و شما اصلا نمیتونی بگی کی اول به این نتیجه خب من شما بیاد منم میارم ساده مشکلی مشکل نیست مشکلی شما با فکر با اندیشه ایزدان اینقدر ایزد داره که اصلا قابل قياس نیست شما چند ایزاد ایزاد داره داره قابل قیاد من نیست. شما چند روزی حرف این برنامه ما باید این بعد هر حرفی که میزنین شما میای میگه مثلا ایران به نظر جمعیتش کمتر بوده بگی این سنده دقیق این سند و دقیق شما با... میگه من فکر می اندیشه افهام لفظ خب اول اینجاست اگر این با خب سند سند رو سند رو من باید یک آدم من سندی که نه این دوتا برای من سواله سند چی بود یا آمارن ببینید برفست همین عرض می ما آماری صحبت ببینید نسبتا هست این جلسه بباده. آقای دکتر بی. لباس جنوب قرب ایران ایرانو در 500 پیش از میلاد بریم بریم من بیاری آید دکتر 500 پیش از میلاد 2500 سال پیش کی حکومت می‌کرد فخامنشی داریوش دیگه بلده. لباس نداشتن داشت من ایشون مثلا از واس صدقه آخر. سن میکنن ولی مثلا بحث بسن... که میشون بریم از به یک بر آچار در جنوب این حقیقت